سوره قاف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المجيد بل قرآن المجید بل عجب انجاء هم منذهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب بنام الله که بخشاگنده و با رحمت است قاف سوگند به قرآن مجید که آنها از اینکه پیامبر هشدار دهنده از میان خودشان به سراغشان آمده در شگفتند و اهل کفر گوگند این چیز عجیبی است آیا وقتی مردیم و خاک شدیم دیگر باره زنده خواهیم شد این چون این بازگشتی بعید است اما ما آنچرا زمین از بدن آنها میخواهد میدانیم زیرا نزد ما کتابی است که همه چیز در آن محفوظ است. آنها هنگامی که حق به سراغشان آمد آن را تکذیب کردند و به همین خاطر در امور پریشان خود متعیرند. آیا به آسمان بالای سرشان نمی‌نگرند که چگونه آن را بنا کردیم و با ستارگان زینتش دادیم حالان که هیچ خلل و شکافی در آن نیست. زمین را گستراندیم و در آن ایجاد کردیم و بر پهنه آن از هر نوع گیاه مفید و زیبایی رو گندیم تا ماگه بصیرت و عبرت ای باشد که روش سوی خدا دارد و از آسمان آب با برکتی نازل کردیم تا به باسته آنها باغها و دانه های شده را برویانید نخرهای بلند با میبه های انبوه و فراوان تا روزی بندگان باشد و به باسته آن سرزمین های مرده را حیات بخشید خروج شما نیز از قبرها اینچنین هست قبل از آنها نیز گوم نو و اصحاب رس و سمود پیامبرانشان را انکار کردند قوم عاد و فرعون و برادران لوت و نیز اصحاب عیکه و قوم طبع همشان پیامبران را تکذیب کردند و مستحق مجازات من شدند آیا تصور می به خاطر آفرینش اول آجز ناتوان شده ایم؟ نه آنها از آفرینش جدید در شک و تردیدند ما انسان را خلق کرده ایم و کاملا از وصفه های نفسانیش آگاهی، زیرا ما از لگ گردنش به اون از دیگتریم بیاد داشته باشید که آن دو فرشته موجود در چپ و راست انسان عمل های او را زفت می نماید. انسان هیچ کلامی را نمی گوید مگر که در کنارش مراقبی آماده او را زیر نظر دارد. ای انسان، سکرات مرگ به حق فرا رسید و این همان چیزی است که همواره از آن می گریختی. در سور دمیده شود و آن روز روز وع مجازات الهی است. و انسانی به سوگ محشر آگر در حالی که با او یک سوق دهنده و یک گواه همراه است. به او گفته شود تو از وجود این صحنه‌ها در غفلت بودی و ما امروز پرده را از چشم تو کنار زدیم و تیزبین شده ایم. فرشته قرین او گوگد این نامه اعمال اوست که من آماده کردم. خدا گوگد تمام کافران لجوج را به جهنم افکرین. همان کسانی که مانع خیر بودند و تجاوز پیشه کردند و همباره در مورد حقایق در تردید به سر می بردند. همان که با خداوند خدای دیگری قائل شد. پس او را به عذاب سختی درفت کردند. فرشته قرین او گوید پروردگاه من او را به توقیان و سرکشی وادار نکردم خود او در اعماق گمراهی بود خدا گوید نزد من مجادله مکنید قبل از این درباره مجازات ها با شما سخن گفته بودم سخن من تغییر پیدا نمی کند حالان که به بندگانم نیز ظلم روا می دارم بیاد آورید روزی را که به جهنم می آیا پر شده ای؟ و جواب دهد مگر باز هم هست. بیش به گرد حریم الهی نزدیک می شود و فاصله ای نخواهد داشت. این همان چیزی است که به شما وعده داده شده است. نه تنها برای شما بلکه برای هر که به سوی خدا بازگشته و حافظ حریم الهی بوده است. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منید ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود آنكه از خدای رحمان در نهان میترسید و به درگاهش دلی توبهكار آورده است به آنها گویند به سلامت وارد بهشت شوید این همان روز جاودان است آنکه بخواهند در بهشت برایشان محیاست است که نزد ما بیشتر است چه مردمان بسیاری را قبل از آنها هلاک کردیم در حالی که از اینان نیرومندتر بودند و فاطه سرزمین های بسیاری شدند آیا مگر راه فراری وجود دارد؟ در همه اینها برای صاحبان دلهای سلیم عبرت است همچنین برای کسانی که حقایق را می آنچنان که گویی شاهد همه سحنه ها بودند ما آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست را در شش روز خلق کردیم و هیچ خسته و ملو نشدیم پس بران که میگویند صبر داشته باش و قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن تسبیح و ستایش پروردگارت را بگو و هم پاره ای از شب را تسبیح گوی او باش و هم بعد از هر سجده سبحان الله آن روزی که منادی از مکانی نزدیک ندادهد گوش فراده و منتظر باش روزی که همه سیه رستاقیز را به حق می شنوند آن روز روز خروج از قبر هاست ما زنده کنیم و می, می و همه سرنوشت ها به ما ختم می شود روزی که زمین آنها شکافته شود تا به سرعت از قبرها خارج کردند، این همان هشر است و بر ما بسیار آسان است ما نسبت به آنچه میگویند تو معمور به اجبار آنها نیستی پس به بسیده قرآن کسانی را که از مجازات الهی میترسند پندو اندرسته نحن اعلم بی ما یقولون و ما عليهم بجباب فذكر بالقران من يخاف وعيد صدق الله العلي العظيم. آه